سود پول سفتنام حج در چه جای خرج میشود کسی فقیر باشد میتوانه برای خود خرج کنه یا برای دانش آموزان فقیر خرج کنه توضیح دهید سود حج علی خودش چجور فقیره؟ خودش که بیس میلون یه ده میلون در بان فیالا پسنداز فقیر نشودی از خودش فقیر نیست چون پول داره اگر فقیر برداشتو استفاده کن تا فقر برداشته بشه حج واجب نیست ولی خودت واجبی که ا برای خودش جایز سود حج که هر نوع ربایی که میآید مصرف روا فقط فقرا هستند مصرف روا فقط فقرا بدون نیت سواب فقط نیت نیماشه سود و بیرون میکنم کنم اگر نیت بکنه که سواب هم برسه اینجا خطر کفر وجود داره زیراکه اینجا این حرام شرعی و نس قرآنی هستین. و بعد اینکه بعضی میگن که آقا ما در سوید رس میکنین برای خودمان یا برای مسجد نه مصرف نه در سوئید هست نه مسجد هست نه مرکز است اینها نیستن مصرف اینها فقرا هستن و دلیلش چی هست چرا الله سوال میشه اگر برای فقرا حلاله برای ما حرامن اگر حرام برای همه حرامه اگر حلال برای همه حلاله این جوری نیست بعضی چیزها برای بعضی حرام و برای بعضی حلال زکات برای پولدار حرامه برای فقیر حلالاً. زکا برای سعادات حرامه برای غیر سعادات حلاله پس اینجا هم این خود سود هم به همین صورته در زمان نبی مکرم السلام صلی اللہ علیه وسلم مسئل قماری پیشمه صدیق اکبر از یالانهو شرطی بست با ایک از مشکیر مکه در نزول آیه که غلبت الروم و هم من بعد غلبه هم سیغلبون وقتی که این آیه نازل شد فی بیز آمد فی بیز در چه سال بعد؟ او وقت صدیق رضی الله تعالی فرمودن سه سال بعد که خود رومی ها ایرانی ها رو شکست میدهند. و ایک از مکه گفت نه شکست نمیدن. دهند مکه مکه بودپرست بودند و ایرانی ها آتش پرست بودند مشکین مکه با ایرانی ها آتش پرست بودند مجوسی بودن. اینجا با هم نقطه اشتراکی داشتند مسلمان ها یگان پرست بودند الله رو پرستش می کردن انبیار رو قبول داشتن به آخرت ایمان داشتن اهل کتاب هم به نوعی به همین صورت بودن به عیسی ایمان دارن به تا انجیل ایمان دارن انبیار رو قبول دارن الله رو قبول دارن آخرت رو قبول دارن اما طول که اسلام آوردن کافرن اما به نحوی مانند مسلمان ها هستن پس از این که رومی ها شکست خوردن مسلمان ها ناراحت شدن که این مثل ماه شدن پس شکست خوردن مشرکین وقتی خوشحال شدن ما هم بگی خدا, خدا رو قبول نداریم شرک میکنه ایرانی ها میکار میکنه پس اونها پیروز ما هم پیروز میشیم او وقت سردی قسم خورد که بعد از سه سال روم ایران رو شکست میده وقتی اینجوری گفتن شرک گذاشت با هم مشرک ده شطور این شرک گذاشته شد بعد از اون پیش نبی مکرم اسلام آمد و اطلاع در شرطی رو بسته نبی مکرم اسلام فرمودند که از سه سال تا ده سال کم بیدش بکن از ده شطور به ستاشطور او را ارتقا بده همین کارو کردن و دوباره هم رومی ها ایران رو شکست داد که خود امپراتوری روم حرقله، از خود قسطنطنیه یعنی از بسیلا ترکیه تا استانبول تا بیت مقدس پیاده را نظر کرد که من پیاده میرم حالا این قسم خوردم کل دنیا براش فرش کردن تا پادشاه داره نظرشو انجام بده داخل سئید بخاری به این نقطه اشاره شده ماده وقتی که این تمام شد سپاس شکر از اون او اون آقا مرد اونجا ضمانت آوردن اما نبی مکرم اسلام فرموده اینها برای تو حلال نیستن اینا برای تو حلال نیست اینا بده و فقرا پس اینجا این سود هم برای خودش حلال نیست برای بچه‌ها حلال نیست، اما برای فرزندانش، برای فرزندان خودش حلال نیست، برای پدر مادر حلال نیست، برای ها حلال نیست، اما برای برادر خواهر فقرای دیگر حلالن، اگر فقیر باشند، دانشام بز فقیرو برای او هم حلال هست